الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله على سيدنا رسول الله وعلى اهل الطيبين الطاهرين المعصومين والذين فارقنا من شملنا اللهم اجعلنا من المشارفين الرحمن الرحيم يا بحث در روایاتی بود که تنصف شدید برای خود خبر واقع یکی چند معروف راجع به این فضال خود و, و بعد در رو از رو شد رایت بلا حضرت سند و که در متخری شده محسوسا در در یه صدای ما قردن ده هم اونی هم نیازن از ساله هزار چون از کردیم از ساله های بزار قبرده بیست یه رجال شیعه بحثی که شد سعی کردن از اون مقداری که در کتب سابرین همه خارج بشن مثلا الانه که خلاصه رو مرشده بیشتر سعی کرده به استسنانی که دو مورد از همون مطالبی که در کتاب شیخ بوده یا مرزادی بوده یا نجاشی بوده یا کشی بوده رجال سمی بود سواهر از کنه این مقرد مطالب راجب به رجال شیعه کمه ساعتمون چه که مسادر اطلاعی ایمان استراحه هم داری بشین که رجالیه که دو کتاب شیخ و کشی و کتاب مرموم نجاشی و نرزادی این ساحت این مجموعه برای حدیث شیعه و رجال شیعه چند از ساقه هزار سبتر به این طرف و از اخوالی ها یعنی شماید در حدیث شیعه و حدیث شیعه سعی شده افراد جدیدی رو از راه های جدیدی توفیل کردن که در مسادر حدید نبود یکی بود که منظوره آنمون بر فرزا این حالا نمخوام بگم دقیقا نزار سن در این بحث های متحقه بشیه اتراهایی بگاه برای توصیل افرادی که تا حالا تا اون زمان توصیلی در اون مسادر محبوب نداشته مرمون به به که از کسانی دیدنی در داره از هم, هم موری. در نصال هم از مشایر بسید هم اون محجازه دیگر کسانی که در بعد های همزه میلیز آفتا رو اینا نقش داشتن اجمالا در این طرف و برای تو و مرموم آشین روی برد آیه رحی نقششون بیشتر از تو زمانشون تفاوت داره اما سعی کردن یکی دیگ و توسیل رو برد که از آهای توسیل همین کتاب بنیقضاد بود یکی از رحاشین بود ارجات به کتاب بنیقضاد بعد از و بعد از راه از جایده که توسیل نشده بودن چون روان همون اون فضا و سه رفت هست چیز؟ لذا این عبارت بعدها خیلی مشهور شد خوب الاده عبارت شخص پیدا کرد تو بحثه بشادی و پردش هم عبارت بود که بلی فضا رفت هم نمیدن و از آن دا حقید به عبارت عبور کنید بعضها و خلاصه ای که باقیم از اقوال در باید بگیم یعنی اونی که به در بانتون فیلی بخورید اینه که اولا این روایتون بباره که برای کسانی که نفی حجیت خبر کردن کافیه انسان فرم درست در این جهت درست شون هست این کسانی که نفی حجیت کردن برمیاردن به مضمون خبر به بکیم که در خبر کردن خود لحظ خبر تمثل, تمثل نمیتانه تو داشتی بیرومه رو درست اما از کبارت ما در یا که نه روایاتی که در شد کتابک هست به این همه خاص مورده رو بوده ماره و روایات به این همه پس این فردواری به درد شهستان این مورده که بخواست اثباث بکنن خبر خیلیتی مورده این مرداد بوده در مقابل کسانی که خبر را اصلا هجهت نمیدونند نه تحبودی نه اغلبی مثل مظموم سلومات هست اصابه هم این خبر در نقی اون مسلک رو یعنی کسانی که خبر را کنل هجهت نمیدونند یکی از عدل نقی اونها همه خبره چون امام ارجاع به کتاب معیم دادند به روایت معیم دادند و معنی ارجاع به روایت اینه اصل به اون لحظ و هر چی که آمده و اخلاق به ر منطوب داره محکوم داره تمام اون مبارس الفاظ رو در اون مراحب کردن این معمول که جده خبره داره این مانتارا لاحقه در یک این روایت رفت کسانی که خبر رو حجت نبیدن کلا از تو جواب آنها واضحه که ای این خبر ضعیب ای خبر انصافن ضعیب به, به لازم تاریخی خیلی شباره نداره بله اختصار مع سنسان که در دهون خیلی مشهور بود خیلی ثروت زیادی در کنار ما پیدا کرد که دراورد این خبر مرحوم شیخ طوسی به ایناوسیه به طور خاص من همیشه از می‌کنم در این زمینه در خدمت هستیم بیشترین قسم معارف دینی ما مرحوم شیخ طوسی یعنی ایشون در بیشترین قسم معارفی که در خصوص های ما هست تاثیر گذارند حالا از فر بگیرین، حالا از فر بگیرین، از فر بگیرین، بگیرین، حدیث بگیرین. بگیرین،, بگیرین در مجموعه معالف، واند شیخ، از آنها نفسه، تاثیر تصریح داره حالا این تصریح تا چیمه داره نیست با این اثبات منابوشه بشه اونیه بحثی دیگریه پس بنابراین این نوطیه اول نوطیه دوباری که کردم بعضی ها این عبارت تمثل کردن حتی تا بخصوی رجالی و توصیه افرادی که نمیشناسیم اگر یعنی در کتابنی افضاد باشه افراد مشروعی این صاحب این رو از این عبارت نمیشه این مطلب این ناظر روایته ناظر راوی نیست ناظر راوی سکر حتی نه ناظر روایت ممکنی راوی سکر نباشه اما روایت محتبر باشه اما این داشت این عبارت حضور ماربو به خاطر همین داره. روایت اونها رو ببین ما از این عبارت راضی رو در نمیاریم من یه تاریخ خارجی مثلا فعلی ما درسی شفته رو میشه ولی ما واش مظاهر روایت فرق به بین روایت در درش قبول نیکید. درش قبول نیکید. درش و واقعیت یعنی قانونیک طور نمی انداز باشه اما روایتش قابل قبوله انصافاً تو این ایوارات خود رو ماروا را رامی نخواهید حالا این رایی که از قبل اشاره کردم اذه رفسان برای توصیه به بعضی از افراد کروا و آنو برای و این معنی همسار متون در ماروا در اگر شما در عوض پس ما در دو ما توصه داده در روایت و حال دیتیی شامل حال رواه مش اینصاف خلاف روایت خیلی این روایت هم نمی‌شه قبولش کرد این هم نقطه یکمون نقطه یکمون نقطه یکمون به محتراد روایه هست خب طبیعا دنیای محتراد زیاده اما سه تا محتراد رئیسی میشه و این زیبش هم که اساسیه. یکی این که مراد باشه که شما به رواد منی فضال اخت خوید مطلقن مطلقن این برای ما داشته باشه مثلا یه در دوبار منی فضال آمده معارض هم داره معارضش هم صحیح فرسونی در کتاب نبی و همه هست مسترش هم امام فرسونی امان مطلقا باید حدید دارنی فرسونی به احتمالش فرسون داره به احتمال داره. احتمال خیلی دوری نیست اگر این احتمال باشه قطعه انه حجیت تعبدیست حجیت اقلالایی نیست تعبد صرف و بالاتر از تعبدیست چون در حجیه تعبودی لاغت به تعارض نظر نداره اینجا که به تعارض هم نظر داره از حجیه تعبودی هم بالاتر من تعبود هم کلام امام محصوم لیکن میلیار نداره فعلا فقط به غلال منه و قضیه خارجی برسل آقایون فقط میگه کطور کتب بنی روایاتش مطلقا قابل قبوله با قبول, قبول بسنه اینجا قابل قبوله اینجا قابل قبوله اما چون مثلا بنی فضل تغییر بوده. آلم بودن، سره بودن، جنر و قرد بودن اونا چه ما نبیدونید تعود است به قبول روایاتی که به کتاب بلی فضال بوده البته تصویر نفرمانید کتاب بلی فضل در اختیار ما نیستن انشاءالحمدالله مقدار زیادی از میراسهای بلی فضال به سرز سکیر به ما رسیده من چرا هم از فرمین مخصیست چرا هم مخصیست در کتاب کافی ن زیاد داره مثلا احمد بن محمد این ابن قضا در اسلام پدر که ایشان حسن بید. و این طریقا صحیح است و در از فاریه تعریف میشه این مشکلی نداره چون هم در تحلیل زیاد میاد ابن قضا در اسلام این ابن قضا در تحلیل غالبا تسری علیه بحث این ابن قضا چطور کافی با ابن فرزان مطلم در تحقیه و قرار رو کنند یه حاله هر دو بزرگوارم که کسر خیلی برملاده جهاز مختلف داره کرده. که دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه به هر حال مرزاد زیادی از آثار که در و به ما رسیده و ما دریجا صحیح هم به ما رسیده و از سر کتاب پسر بعدش این من مشهور بودن که تا قرمه 6 و و 8 شمیه ها موقع بوده سه خیلی خیلیجه ها در این کتاب اقوال استقاب سیام به مخضا درمون کنه درانش این کتاب سیام اینچان تا زمان این طاوز موجود بوده این نه رو بزمینه از حاله این احتمال افرد احتمال, احتمال دوری که دو نه مراده ما به اصطلاح اووجیت مطقب ح تا در صورت تا آوز نباشه اویت رواط فزار وجود به سریع به استار ماه اینا رو قبول بشه باید قبول بشه و ووجیت دارد او کم نمی در مورد ما مععرض سرایی کرد و همون اووااض با تا آارز ماجعه کرد این ناظر نیست حتی در صورت تا هم مقدمه ما را عبارت این نیست ما را این, این بیا رووارد روست خب مونکه را دیگه هم داشته شدون هم درست باشه برمیگردیم به قوائد تارس اگر این معنا همون را داشته باز هم حجیه تعبدیست چون تعبد داریم یعنی به این معنی که میخواد برای ما اصوب پیدا بشه یا اصوب پیدا نشه با که ما حجیه تعبدی به کتاب معیم نه به راوی حجیه تعبدی کتاب ما کشتر بحث میکنیم توی راویه چرا؟ چون مهیاب رو اما سر رو به خودو در هزار رو نفرموزه چون مهیاب رو نفرموزه این میشه تحبود به راوی باشه تحبود به کتاب بره این میشه از حلیل یا به تبدیل ما شبیه تحلیل فهرستی یعنی کتاب رو تحیید میکنن نه خبر رو که مثلا راوی شورانی باشه این تعقیق ما هم هم متیه میشه بینم که بست نیزاره زریع سرد افراد احتمال سرکونی که حدیث و عورت نازل به حدیث این معنی نباشه بیشتر نازل به رحمه مانع باشه نه به حدیث مخوام که یعنی ابن فضا که خواسته اینجا فده هیست. این مانه از اخز حدیثش نیست <تصفيق> خودماره با کنایه باشه مثل زیدون کشک ما رما خودماره باشه بیشون س... سره سره از اون کنیم خودماره با و در حقیقت اما سراموزوالی به همون متعارف و اغلا که به نبل سره حالان اعتماد میکنن میخواستن صورا به تشلیس کنیم بیگه اینا سره از اون این سره از این سره جدی اون این و این شد من ارجاع از به سیره اغلایی اگر ارجاع بسیده اغلایی شد خب, خب ما اعرض کرده این دردیشو اغلایی حبر از سقه شاید هفتا درفتن 65 درفتن 65 درفتن غصوب آبر باشه اگر غصوب آبر خود جسته موارد این هم غصوب نمیابه باز تجمیه شوارد بکنه پس امام علایستان نمیخواستن یک تحبد جبیدی به خطب بلیفضا را در قطع کنه امام ها میخواستن بلیفضا ثقاته کوتوله برای تزرزد مثل کوتوله سنسای اینگیشما کوتوله سنسای همه را قبول میکنیم، بعضی را قبول میکنیم، بعضی این عبارت این معناش اینه که کوتوله برای تزرزد مثل کوتوله سنسای، مثل ما را یعنی این کتاب ها معتبره، اما نه این معنا که اینا سبب در نیست، نه این معنا هرچی این کتاب ها معتبرند قبول میکنیم. مذهب فاسد اونها مانع از وجیه کرده بایدشون نیست مثل آرخویی بفرمانیم به ساقت مناقی نیست با فساد مذهب ممکنه فاسد مذهب باشه سقه باشه رو هم بکنیم پس خودماربو کنایتون انهم ثباث اگر کنایه باشه حکم کتبین ها با کتب ثباث رو بگذار میکنه نیست کتب هسته میسه نیست کتب هسته من بگو هم میشه. ما در قطعه حسین سایی چه کار میکنیم؟ بعد جا قبول کسیم می میکنیم پس در قطعه بری فضا هست هدف ایمان نقیه مانهه مثل در مقام حرف و هست. هدف جدیه اینه که مانهه نیست اینا سقاطن به لحاظه نقل سقاطن اون مذهبشون فاسده اگر این معنی باشه اشارت با همون خود جد و ما شما باید. پس که تا نکته در اینجا رو برشن شد امدهش این اتعای و از این روایت ما هجیه تحبودی دو تا احتمال هجیه تحبودی بود یک احتمال هجیه تو اقعا ده به نظر این افراد همون هجیه تو اقعا ده یعنی اما کل در حاله چون روایت زنیفه دیگه به نظر من شیعی بخص نکنیم به هر حال اگر از این روایت و بوی احتمال اول و دوم بگیریم انصافاً ازش حجیت همبودی در میاد اما در چهار نه در راهی و انصافاً از این در میاد که اجمالاً در کلیه اهل بی خبر با عنوان خبر حجیت بوجه اینم در میاد راست مثلاً اثبات میشه کرد این خلاصه این بکن رو کلن و دیگه اینا ما فقط مجدیات بحثه این یک تایفه ای از روایات که کتب بود حالا بهشون دیم اونمون آورده از اینجا از شماره سی و یک تایفه دیگری از روایات که البته این تایفه ای روایات در کتب احمد سنت هم آمده اینا توایفی روایاتی هستن از کاره اگر معروف به ها من که به بین احل حدیث سنی بشیه. من که به را را را این, این حدیث هم شبه تواتر توش داره خیلی شما زیاد نهم شده این حدیث دیگر هم میکنن چون هم سرمی ها نهمتره هم چیه نهمتره همه اصانید متعذید داره همه اصانید تقییم داره خیلی زیاده یعنی قطعاً هم اگر تواتر نیست قطعاً هم مستفید هست قرار فبر واحد نیست حالا در سندازش من هجمارن می چون زیاده فکری ماشالله چون از اصول کافی شماره 37 عددی از من اصحاب از احمد اشعری از بزرگی از احمد بن محمد بن نبینخ بزرگی رحمه الله انا ابا ابن عثمان ان ابن ابي ابو سعد صحیح به بحث شد فعبد ابا ابن عثمان ادعا کرد من فتحی واقفی کیسا نیست هیچ کلمه‌ای چون شیعه هم نیست ان ابن نبی عبور انا ابي عبد الله علیه السلام در رسول الله خطبا خیر خیف یا خیف. این روزه دهم همه زی بوده در هجه تولودا فقال از کدن این که حتمان ناز هست که خود باشن نوید که چه در سال هجه تولودا و این رو زیاد نقره کردن تقریبا یه مقدار الفاظش هم مثل همه یعنی اینقدر زیاده چون مثالی تواصل لفظی داره. قال علیه السلام نظرن لابا عبدن سمع مقالتی طبعا سابقه هم چنده پریگر پریدو هم گذبوزید دارم خود قرآه حدیث و مثلا اهل سنت کشونی زیاد یاد کرده کردم سه چور این کلمه قرآت شده نبره از باب تفعیل نبره از باب غربه و نبره از باب علیمه به کشف اینال فقر و از ظاهر معیل معیده همین قرآت سه نبره الله عبدن نبره بنایه روشن باز پشنگ باز زیبا با. مثل حدایق ناظره میگه نظر این دیگه باقای خوشمنظر طلب منظر رو منظر فارسی با لاه این باز لاه بزران لکه این هم روشنیه این چیه عبدی مثلا عبد محفظیه عبد روشنیه سمع مقالتی سمعا صحبت من گفتار نه حاله من گفتار گفتار من رو بشنوه و حفظ بفهمه و حفظها حفظش بکنه تو حافظه خودش و بلغاها منلم یخمه ها قیامت تحکیل فرمودن برستونه به کسانی که نبودن این همه حجر خبره و بلغا منلم یخمه ها این همه حجر خبره و انصافا این خبر مبارک دلالت برای خبر میکنه حالا توزیش به در از این کنه شون بلدق آمدن از ما اینو دیگه فرق به حامل غیر غیرفقی حالا این نقطهش اینه که اگر من صحبتی کردم اینه الفاظ من نگفت کنه کم زیاد نکنه ممکنه محجر من نفهمه شکال نداره اما همون رو نرمی ممکن ممکنه بیایی آدم که نه اون طرف بگم چی بخورم اون بهتر بخنده برابده ها ملتره هنه الامرهوه افت ممکن ممکنه خودش نکنه در لفت تصرف نکنه. نگه پیغمبر مثلا اینجوری فرمه میگه مرادش اینه نگه مرادش اینه همونی که من گفتم به این الفاظ حفظش بکنه همون رو هم برسونه بللمه ها منلمی از مره ها فرابده ها ملتره و رب دامه همه لفردن الامن هو و هفته همه حالا من منجمه مساله بیدونی که پیغمبر در این خطورشون مقرم بودن خلاصون لا یقن لا علیه علیهن خلود خودشونه خیانته خلودن نانه خیانت اما در بیشتر مثل جابه دابد، زابه این که مثلا راه میره اما بیشتر با اولاه و گابوینا میگه خلود بیشتر به خیانتی که در قنیمت شاید یه از کارهایی که در اون زمان و در جوایزی صورت وقتی مثلاً مسلمانان ها یا در یک جنگی غر میگن، بعد شاید مثلا بعضی هنرمندان یا فیلم دوستیله، اینها قلود میگن. بعد قلود به معنای خیالات و معنای اینکه زمان کار باشند که نه یه رو بندی، خیالاتی رو سلام کن لج ابلو علی. من کلموم رم مسلم خودی هستم. دندم دوستیو در آشوب. انتو زن هموز، زن نامو یادم میاد اخلاف صلح عمل لله در این سه مطلب نباید خیالتی بکنید یکی اخلاف عمل لله النسیح صلح عمد مسلمی و لطوم و لجماعته فه این دعوت هم محیطتون من منورا چون اگر مسلمان قضا با هم باشن این ها و قلوب دارن بر اتصالی جغیرات ما هستن غیر مسلمان المسلمون اخوه تتکافه و دماغ خون اونها مصابیه یکی نگی مثلا این رئیس این فلان این نه به لحاظ خون و به لحاظ دیه همه نوافه همه کف تتکافه یعنی کف کفی دیگر هستن اصلا کف هم با, با همزه طرف و با بابا و یست آقل متهم از نام دربابش ظلمه درمونات مسلمان ها چمتنین هر هم همون اثر داره که شخصیت این شخصیت اینه مطارق که اگر مثلا درکه همی اگر یک مثلا رئیسی مثلا رو بروش با یک پرمانده شجاعی این بخواد امان بگیر به اصلا میوازن پیش پرسیم مثلا به اینکه پرمانده این طرف مقابل یا مثلا امیر میگوزن آقا به امان بوده چون شخصیت یک شخص به شما اسلام این برداشته شد. پس امروز هنگامی درجه موجی بقای آماده شد. او یک کارمند، عمان یک مقابل امان بده، امانش پاک کرده. این مقدار از مشارکتی آمده. اون که نیستی ازشی میگی. یا سعی به ذمتهم از نام کمتری تعبیر میکنه. اگر بخواد بیاد یک کسی رو امان بده، یک هنر آدی که چه بوده ترک مقابل یک کارده کرده بشه. این فرد آده یا اینطورا امان دادن این که گفت امان دادن این امان نافذه با این امان داری جمعیه این در شکر امان داشته نه تنها فرد عادی یه از آده مزیم از نام ترین فرد هم، خواهد به اصطلاح ذمه بده و بده و تناه بده این با بالاترین فرد یکیه در دنیا اسلام فرد این رو کنه دماغ خونه هاستون همه به حال مزید چیم؟ یه نیستون خونه آبیرنگه چیزی خونه آبیرنگ نداره؟ خونه همه یکی بوده اینطور نیستی یکی فرد رو بوده دیگری با هم برابره و کمترین فرد مسلمان میتونه پناه بده به بزرگت این شخصیتی که در اون طرف مقابل هست به یکیستی از دشمن فرار که در آنگه پناه خونه فرد و آزی هم میتونه به لازم نیست در پناه دادن حتما خود این هم شخصیتی باشه در دنیای اسلام این طوریز که همه به نحو واقعی هستن کمترین هر دیگه در جبه باشه یا در پناه دیگه به کسی پناه بده چون خب مثلا یه از دیگه باری خود ناسه وقتی که آمد میشه عقباز آمد چون بایشون آشنا بود چون آمد مدینه بیشه به قرآن و این که پناه دیگه در اسلام نمیخواد هستم تویش یه بقال هم نیست بقال کنه آشده تنه ها اون نافذه امانه اون نافذه زمه اون نافذه یس آبه زمته هم او. اون کمترین خرد هم نافذه. این در در دیشتاده به هم یه دون علام هم مسلمان جامعه مسلمان همه یک نواه یک درست واضح هستن برخلاف افرادی که به خودشون و رواب رایستان محمد ابن عثمان ان حبان ان ابن ابیه و رواب را برمیره به بزنفی چون خوب از حبان محلی کرد و زاد فی در این نسخه و هم یه دون اعلا محاصبه و ذکر فی حدیثی لگه این حدیث انهو خطب بینه که خیلی فی به منافی مستر خیلی راسته از که این قد شواله این حدیث هست مثلا همین سنده که مزفیم سهیه حالا چهارهای دیگر می ای هم ایشون اوبردن و خوب بود که ایشون حالا مثلا به نظر ما البته این جور ها خوب بود اصالی در حسانت رو هم می آوردن که اونا زیاد دارن همین نظرم دارن اضافه هم بحثم کردن محلوم صدر من اینا دیگه کنم نموخوام بحثی رجالی اینجا انجام بدن و این چون کاملا مشهوره و کاملا مستفیزه یک سندشی شهر دیدیم بقیه بقیهش یه ثقل اشارات عادیه میگم حضرت ما محمد بن محمد متذکر از مشایخ صدود تونسی در نداره مرحوم علامه اینا توصیف کردن این معنی اصولا بر اساس توضیحات اندراب قبول نیست و از اینجا قبول میکنیم سئن تو هم این مناظره ایشون توصیف کرد قال حضرت ما علی بن از از مشایخ استاد کلمی خود این ای رو یعنی ای ادبیات و نحو رو کشیشون بوده سعد آبا چند تا بود و با هم داشته سعدابا. تهران هم داشته و یه امیرسانی بوده و عرض کردیم که رادم هر طور این علی نوحسن سعد آبا دیردیم قطعا بعدش برگیشون از برگیشون از برگیشون از برگیشون هرمه میکنن هم احمد ابن یعنی ابن خالد برسته یعنی این آ سن در سابقه سال حضرت سنی عبی قادر هم قال حضرت سنی سن عبدالله عشق علیس ان احمد ابن عبی عبدالله برگی هم برگیست اون دیگه به برگی ان احمد ابن محمد ابن عبی نصر برزنطی از اینجا با اون حلیث سابقیه که میشه مرهوم احمد برگی از برزنطی البته ما داریم موازد مشابهه این هم داره بخشون خود من شخصا ها نهیدم در آن رجالی ها خود من شخصا شبهه دارن که برقی اختصار از مشایخ ارام نه بکنه. کنه احتمالا این عدیه اینجا افتاده باشه خود من شبهه دارن سن احمد برقی از مشایخ قومه و بزنکی از مشایخ ارامه شبهه دارن که این ارام آمده باشه پدر ایشان سرا خود ایشان دارن انا حماد بن عثمان عبدالله ابن توی نسخه کلمی ابان بن عثمان بود اگه مقایسه بکنید سند با هم اختلاف داره انا ابي عبد الله قال خط رسول بعد از مفهوم سیدره اذا اجازه تدریه علي بن ابراهيم به تفصیل دائم انا الائمه عليه السلام انا صلی الله علیه و آله نعمه لوکلی تا اینجا که ما الان حدیث داریم این تو اینجا از امام صادق معروفه این حدیث خاصی از رسول الله از غیر امام صادق هم بوده این دقیق حساب دائم ولو اسماعیلیه در مصر بوده اما دقیق اینی که میگه ذن عن الائمه انه من رو شد از امام باقرم داشته از امام بزام داشته اونی که الان ما داریم از امام سادره ایشون دعیمه نسبت داده حدیث شماله بعدی که ایشون شماله 38 زده حدیث مجهور زده و به عنوان اصول این حدیث رو بعدی اشاره کنیم بعد امالی مرگوم شیخ مفید حدیثا شیخ الجلیل مفید رحمه الله قال حدستانی احمد ابن محمد شرابه نه از کردم احمد ابن محمد در مشارق مفید پسر ابن الگلیده پدر اسمش محمده پسر اسمش احمد احمد ابن محمد پسر ابن الگلیده ظاهرای اشان برداد آمده ما تاییشو نمیتونیم چون شهر مفید قوم نیامده خب دقن این دو شهر که میشن اون رابط رو باید پیدا بکنه به این دو شهر شهر مفید وقتی میاد قوم از مشاهد قوم نرمو کنم گایی توسط استاد شیخ صدوق درست گاییم توسط این احمد، پسر ابن الولی آدتا این جوزی خیالی مگه در مکه هم جوزه باشد لا آدتا باز بگیم احمد به ارام آمده ما احمد رو کلن عاشقی باشه نداریم فقط این که از آزاد رسول الله بردیم به دار دیگه از ایشان شناسایی ندر کلن از احمد عاشقی جوز اینکه که ایشون پدرش ابن الولی در بسیار بزرگی از خود پسن آشنایی نداره انا عبی انا محمد ابن هرزن سفار که جریب قرده انا همه بزرگوار هست جز احمد که نمیشن انا لعباس ابن معروف که ایشونان بزرگوار انا علی ابن محزیاف انا محمد بن اسماعی زاهرن ابن بردیل باشه که صغره و جهره انا منصور بن یونس خوب به اون نظرم هر نبی عبدالله قال حتی به رسول یومینات اقال نظره لابا عبدت الاخره همه رو کامل نید اطمون هم نام این, این سند هم به استثناءی کسر ایمون ولی مشکل خاصی نم حدیث شمایه بعدی عبابر لعالی النبی صلی اللہ علیه و رحمه اللہ آهیم این هم هست اما محن مشروطه نظر الله هست. سمه مقال از این خواه ها و اده ها و اده ها و اده ها و تماسانه ها فراب به حامل تک خب این هم الان من نشده کتاب عوضه لالی رو تو کنم همواره لالی قسمت بندی کرده اصلا یه قسمت از کلمات علامه است باید ایشون همی کنم نشد تحقیم کنم با مراجعه مکنم که ایشون چاشه یه کتاب اما خیلی که خیلی زنید هم خودش خیلی ضعیده هم خودم محلق شدیز نصابه خیلی ضعیده پس این حدیث حدیث صحیحه این جایه بست و تصمیل که از احادیث بسیار مهم در حجید خبره قطعا نمید ایکی از احادیث بسیار بسیار مهم در حجید خبر همینه غیر از اینکه که چند بچند هم مهم هم بردن اینی اصحاب زمت این از نامی که از اخوان بلایی ریه تو خود همین کلمات که ارام کنم برای تو تفکار قادمه هم و یعنی از آب زمتی افکام مهم می رو و اگر ما براییم به دوغت امروز خوف بکنیم که انما اینطور جرمی هست خوب درکت بکنیم که که انما مثلا رسول الله مخواهیم بفرموند که در اسلام بیان سنن رسول الله همین صوت ربایداته ده حد. این در اسلام اون چیزی که فرآورده الهی تفسیر قرانه برای همین از در سنن این روایت تفسیر شد برای این خیلی ارزش خاصی در باب وجد خبر داره که امام فعلن ها میخوام بفرمایم که من مطالبه را توسط شماها ادعا میکنم این البته تو خیلی سنگینه فکر بکنید این معنا که در اسلام دو رکن اساسی ما در تشریع داریم یکی کتابی که احکام ادازی خب این قرآن، این قرآن یکی هم سننه خب کنه ظاهر این حدیث یه از که سنن مدرون نشده توسط خبر رسیده میشه به شما این خیلی همزش خبر رو بالا میبره یعنی این نشون میده که در اسلام اگر بنابشه بشه درباره عمل نکنیم سنن رسول الله هست ما از کردیم که دیگه سعی داریم که در باورموند که خبر خیلی تون رفتن بالاتر از این که ما تو لارک خیلی می ترینه هست. سر این نهات که مهم اسلامش سوند زیرا در ورشیب و خارق وقتی ما مکلف هستیم به اتباع قرآن و سونه مکلف هستیم به اتباع روایات بلکه بالاتر من از کردم شن آیه کوی موجام شرایط درست مسلم، و اون دلیلی که بیاید تستی دیم، بیاید تستی این همه رو بزنن. اون که این حرف رو نهال ببره، ایشون میگن نه نه نه نه زیک شما لوله ها فزودن هم میشه اگه تو ذهن زیکم پر آب، نه نه نظر نه زیک تو ذهنم پر آب، ایشون میگن نه زیکشام لری هم میشه. فن شونه که این هم در حال سرورس هستیم، و سنن هم جز زیکه، این ناله ها هوله ما هم حافظ احکام الهی هستیم هم حافظ سنمه پیغمبر هستیم البته ایشون تبدیر شجیه روایت میگی مارواه و سقتون انسقتن ان رسول الله حنوان این یعنی مارواه و سقتون انسقتن ان رسول الله به منزله قرآن گرفته و ظاهر این حدیثم همینطوره اجماله نه که بو معنی که ایشون گفته ظاهر این حدیثم کردم فهمت نظر من دائمن از همه مقالاتی قراتید تبعا ثم ثم حبوا ثم ادوا كما سمعها ثم قال لاما نمیاسمها بل لا که علمو اشاره به اینه که مقاله رسول الله سنن رسول الله به نحو سماعی و اگر این سما نباشه، اگر این روایت نباشه که انده مقاله رسول الله به ما نمیرسه خمونه بلغه ها منلم یسمه ها قردن تو بلغه برزار که این حدیث رو مثال مثل نهرز ها قوموزن چند ما نموزن درسته و اگر باید به اصطلاح امروز رسمی رسمیتر صحبت بکنید خیلی عجیبه معلوم میشه که در اسلام برنامه بر این شد که احکام علاقی مدرمن و اما سنن پیغمبر مدربن نباشه به بلاغ باشه به سماح باشه به همین روایات باشه یعنی این کاری که رسول الله انجام داده به رضیم این کاری که خیلی داده نه این ده در این ده بله مثلا با کعالید خارجی. البته خب این یک ای مشکلی ایجاد میکنه. معتزله که منکرو جو جلب خبره، علل غیراتو منکرو جو. اونها با این بحثی ایجاد میکنه. این is رو از dey میبره. این اگه بنا بشه مثلا یک سقه به قول ابن باشه، خب این مشکل کلاما در ذات اهل سنت نمیگه، به قول اون ثغره، ثغره که اروزا با هم داره. خیلی بدیه. اصلاً دفعه تو رو. خیلی برید ما حدیث رو جور معنا بکنیم پس بنابراین اون نکته اساسی در این خود فهمه این حدیث رو با همون و من داری تو فهمیم ما این حدیث رو چی جور معنا بکنیم خیلی دقت این مطلب از خیلی اول بحثم اشاره کردم چون این حدیث اگر با این مضمون ثابت بشه یعنی رسول الله بحث سنن رو به سماع دذاشتن در ربایت درستن این معناش اختلاف تعارض این دقیقا حقیقت امضای تعارضه بنای من که بنای سای نیست که با عمر مشکلی داشته عمر گفت چی کار میکنید معنی خود پیغمبر ساختن خوب است خوب است خوب دقت کنید تا حالا شاید حدیث شنیده بودین این ظرافت کار رو چیه؟ حرفش چی بود یعنی معذره میگفتن ما نمیشینه قبول بکنیم چون نه اینکه در اینجا گفتن کنم میخوام ارزو کنم اینگره ها میگن این با خب معناش که رسول الله بیاد قبول بکنه تا آرز رو هست بیاد این مقلب رو قبول بکنه و بنابشه سنن رو که پیغمبر قرار دادن این سنن به نقلها بشه نقلها توش تموزیات داره بالا پایین داره دقیقه در محل لفظم لازم, لازم نبوده نقل و معنام میکرده خب این خیلی فقر رو به هم میدیده. از اون برم مثل احمد مثل امثال ابن هرمی میگن نه پیغمبر فرامون خبر سقتون انسقتون انن نبی این همون ذکر است این همون مقاله رسول الله و این دینه اصلا دین اینه اینه که برداشتیم برسن و علمو انه حدیث کن و حالا دینون فمزو و انمن تر خدون این بینه نظر ما ر مح دقت بکنید شیه در اینجا مشکل کار این شد و نقاب درست اون رهی رو که شیه رفتن اوا بعد راست میگه تو شیه بودز اصولا در اضظ مزار اسلاملای تو اهیگر ها هست می میشن پس وی تو عملگران شیه گفتن بله این مصرف که شما برم درسته. ا این مب که بر هم ن رو من بیان کردن و، برسومین به دیگران این محضر درسته سهندس هم و اتا این اما اینکه مستلزم بلبشون میشه و هر حدیثی رو هر جور این رو میگفتن نه شما مشکل تو مشکل شماست این حدیث که پرموزن نظر الله و یا حبدال سمه این رو در روز دهم هم قرار پرموزن در مسجدش دقیقا هشت روز بعد خطبه قدیر رو دارم من کن تو مولا حالا علیه مولا یعنی شیعه ترم رو این دار که روایات رسول الله سنن رسول الله به نحوه به اصطلاح کلام گفته شده لیکن راه وصول به او، امیر مومین ورده بیته اونی که عامل اختلاف و برمیداره اونی که سبب میشه تا آرز رو برمیداره اونی که با قول شما بخواد بل بشور رو برداره اون مساله وصایت به امام علی الودایته یعنی مشکل شما اولی فقط روز دهم رو گرفتین مثلا در واقع شده که تو بخاری یه مقداری از خطبه پیمندر رو واسه ختبه ما رسول الله به تبیین يوم قبل وفات این در حقیقت جزء از خطبه قبیله است که به عنوان روز دهم آورده اکثر اون که تبیین يوم قبل وفات دی روز قبیله چون یه جا رو بوده تا هیچده همه محقم سی روز تقریباً الان تو روز سی پروز سی نارست تا هیچده سفر چست روز تا بیسته همه سفر دو دفعه سی سفره میشه 70 روز اونه که دقیقاً 70 روز خبرد از و پیغمبر قبیه بود نه خطبه مسجد خیلی اون هفتاد و هشت روز قبل از و پیغمبر قبیه اونی که دقیقا عددی که تاب در بخاری آمده اون عدد تعیین دقیقاً روز غدیره روز 18ه مون دیرجاست این خصوصاً دقیقاً روز دهم م دیرجاست پس از بلزاد یک حدیث نبوندم یه حدیثی رو البته ترجمه مرسل شده طرف تذکره اسمی شده برای یه که سفیان صوری او به مشجر محمدی شماره 38 اینجا راشی مو بعد بله اجازه دونم بعد گفت که جناب آقای صوفیان صوری به امام صادف اصلاح که این خرطه رسول الله رو بود امام قبوله که بعد گفتن همین مطلب رو اوبرده صوفیان صوری نوشت نظر الله همین ستان هست صلاح صلی اللہ علیه مقلب و امرن المسلم اخلاص خیلی متن شویدی در دردینی که وقت گذشته من قاعد تمام بکنم خالا ماکن نافی بعضه تاریخ خب شفیان برداشت نرسو خیالش راش تو را قادلی کم کماعت کماعت است که صد مثلا ببینن حتی انظوری حاضر حدیث ببینین این حدیث چیه نظر الله است قبول چلو الله عز و جل عبد الله رغب لا نداعتو مدار قد حدیثی چی رو کردن تو این دفتر قباله برای اینکه انسان چی گفتن از اون چیزی چی نبود کل چوز حل آشن لایل الله علیه نقل بند اخلاص العمل در دو پدرکنار نصیحت علمت المسلمین من هاولا علمال دین احجابی و نصیحت علم مآویت النبی صلی الله و آله و علیه و مروان و علیه و آله و علیه و آله و علیه و آله و و آله و علیه و و و و اینان است اوان ها و قول رو مرج و لزوم به جماعت هم فرعی و جمعهن کدام کمه؟ مرگ موج کاپول مل و وا اگر سوعمللا یختین جماعتن و م کعبه و ن که آن مع تجگان فوا الان ایمان جرشون من به لب سوگن کاپیه ایمانش رو ایمان رسول حالا همه گناه را انجام بده. و میکنیم او قدری و ناپول و یون و مشالله از جه به یون او و حرووری آن خبرش یا ثبره من علی ابن ابی طالب و شاهد علیه بالکفر او جهمی و یقول ان ماهیه معرفت الله وحده نیست می ماشی اون دیرا تا همه گناهان انجام بده ازون تلاظ به لا اله الا الله تو قلب خدا رو بشاره قال غی هت و ای شی و ای شی یقولون که امام سازا چی میخواد بگید فبُل شو یقولون ان علی ابن ابی طالب بالله ال امام الیج و علیه النصیحه و لزوم و شماعتی هم اهلو بیتیهی مراد اما که این هر گفت مراد اینه تو باید منطقی بقید تنچی شد حال ته اخد از کتاب صوبیان سوری کتاب بگرفت تا بود هم خرقه بود درست هم خرقه بود با تشکیل پارش کرد اون نامه که فکار آفرقه پاره کرد سنبه با الله سخبر با ها اهدم اله آخیلی پس بنابراین انصافن اجمالاً این که ما بخواهیم احادیث رو کلن تغرق تغرق کنیم این سا من خلاف داره این حدیثه حتن یقال. اما حجیت تغرقی هم از این روایت در نمینام بعد حجیت رو همه حجیت اغلای شهر شدیم و الله و